چهار تب. ترلکوفسکی بیمار بود چند روزی میشد شدد که حالا روز خوشی نداشت چندین بار لرزش سردی را در کمر و ستون فقراتش احساس کرده بود آوارش به طور غیرقابل کنترلی میلرسید پیشانیش یک لحظه از شدت تب میسوخت و لحظه بعد از عرق سردی پوشیده میشد ابتدا از پذیرفتن اینکه بیمار است، خودداری کرده بود و آنچنان که گویی اتفاقی نیفتاده، به زندگی روزمرش ادامه داده بود. در اداره، برای متوقف کردن وزوز مداومی که در گوشهایش میشنید گاهی مجبور میشد سرش را در میان دستهایش بگیرد. اگر لازم میشد از چند پله بالا برود، حالا هر قدر هم که تعدادشان کم بود، به بالای پلهها که می رسید به وضعیت ردتباری می افتاد. دیگر نمیتوانست بیش از این واقعیت بیماریش را نادیده بگیرد. بیماریش شکل حادی پیدا کرده بود. یک جور آلودگی راهش را به درون آرگانیسم بدن او باز کرده بود و احتمال داشت به کلی او را از پا بیاندازد. اما این آلودگی چه بود؟ انصر ناپیدایی که عملکرد منظم یک سیستم B با نخص را دچار اختلال کرده بود؟ چرخ دنده ای که دندههایش صاف شده بودند یک میکروب دکتر محلی چیز زیادی درباره علت بیماری به او نگفت و صفا به تجویز دوز ضعیفی از آنتی بیوتیک و تعدادی قرص کوچک زرد رنگ که ترلکوفسکی باید روزی دوتا از آنها را میخورد اکتفا کرد علاوه بر این به ترلکوفسکی توصیه اکید کرد که روزانه مقدار زیادی ماست بخورد ترلکوفسکی خندید فکر این یک جوش شوخی است اما دکتر قاطعان سرش را تکان داد و گفت نه نه کاملا جدی گفتم ماست به مقدار زیاد سلامتی روده‌هاتون رو تضمین میکنه هفته بعد باز هم به دیدن من بیایید ترلکوفسکی سر راهش به خانه به داروخانه رفت از داروخانه که بیرون آمد جیبهایش پر بودند از های مقوایی قرص که از همین حالا تا حدودی اعتماد به نفسش را به او بازگردانده بودند به خانه که رسید قوطی دارو را باز کرد و دستور مصرفشان را به دقت مطالعه کرد. داروهایی که دکتر برایش تجویز کرده بود تأثیر خارق عادده داشتند. اما شب بعد حالش باز هم خراب بود. خوشبینی محتاطاناش جایش را به سرخوردگی مل داد. حالا میدانست که داروها به هیچ وجه چیز معجزه آسایی نبودند و نوشته های درون قوطی ها هم چیزی جز تبلیغات نبودند. در واقع از همان اول همچنین نتیجه ای را پیش کرده بود اما احساس میکرد تا وقتی قلابی بودنشان را به خودش ثابت کند چاره ندارد ای نداره جز این اینکه به این باسی ادامه دهد تکوفسکی توی رخت خواب بود با اینکه گرمش بود اما هنوز احساس میکرد به اندازه کافی گرم نیست ملافه را تا روی بینیش بالا کشیده بود طوری که قسمتی از آن در اثر برخورد با بزرگاق دهانش خیز شده بود حتی برای باز و بسته کردن چشمهایش نیروی کافی نداشت. یا همونطور که دراز کشیده بود، با چشمهای باز به فضای خالی مقابل خیره میشد. یا وقتی میل به فراموشی در او قوی میشد، یک پرده زخیم آهنین رویانها می کشید. اما حتی در این حالت هم وقتی سرش را به طرف پنجره میچرخاند چرخاند، مایه های ملایمی از رنگ صورتی به درون تاریکی آرامش بخش نفوذ می کرد. خودش را مثل توپ زیر ملافه‌ها جمع کرد. بیشتر از هر زمان دیگری احساس هوشیاری می‌کرد، طوری که تمام ابعاد اندامش برایش آشنا بودند. سعی کرد خودش را در کوچکترین فضای ممکن جا کند تا نیروهای ضعف و سستی نتوانند جایی برای لشکرکشی بیابند. زانوهایش را رو تا روی شکمش بالا کشیده بود. ماهیچه‌های ساق به رانهایش چسبیده بودند. و هایش هم محکم به دندههایش فشار می آوردند. چیزی که در این میان ضرورتش بیش از پیش احساس می شد، یافتن جای مناسبی بود برای گذاشتن سرش روی بالش تا صدای ضربان قلبش را نشنود. پیش از آنکه بالاخره جایی را که به طور سعادت او را از صدای قلبش دور نگه می پیدا کند، بارها و بارها به دور خودش شرخید و قرد زد. تحمل شنیدن این صدای وحشتناک را که پیوسته آسیب و شکنندگی هستیش را به او یادآور آور می نداشت. بارها به این فکر افتاده بود که احتمالاً به هر انسانی در هنگام تولد تعداد معینی زربان قلب بخشیده می شود و به این ترتیب از همان ابتدا طول عمرش مشخص می شود. وقتی دید با وجود تمام کوششهایش هنوز هم می تواند صدای زربان قلبش را روی قفسه سینش بشنود، به زیر ملافه ها پناه برد سرش را که به زیر ملافه برد با چشمای باز به طرح کلی اندامش که در تاریکی به دور خود پیچیده بود خیره شد با وجود نور کم ظاهری قدرتمند و حتی قولاسا داشت از بوی تند و نافذی که از اندامش می شگفت زده شد به طور عجیبی احساس آرامش بیشتری می کرد. به خودش فشار آورد تا باد شکمش را خالی کند تا بوی بدنش قویتر و غیر قابل تحملتر از پیش شود آنگاه زیر ملافه‌ها باقی ماند که دیگر چیزی نمانده بود خفه شود با این حال وقتی به سرش را بیرون آورد و دوباره هوای تازه را استنشاخ کرد نیرویش را بازیافته بود آن شب وزیعت ترلکوفسکی وخیمتر شد از خواب که بیدار شد ملافه ها خیصه عرق بودند و دندان هایش از سرما به هم میخوردند. تب چنان او را بیهز کرده بود که حتی ترس از وجودش رخت بربسته بود. یک پتو دور خودش پیچید و به آشپزخانه رفت تا با کتری برقی که به مستجر قبلی تعلق داشت آب جوش درست کند. آب که جوش آمد با گذراندنش از یک صافی پر از توفاله های چای برای خودش چیزی شبیه یک نوشیدنی گرم آماده کرد. چای را با دو برین بلید و حالش کمی بهتر شد. به اتاق خواب برگشت. اما به محض آنکه چراغ را خاموش کرد و در تاریکی روی تخت دراز کشید، احساس کرد اتاق کوچک و کوچکتر می شود. تا جایی که آخر سر دیوارهای اتاق یک تابوت تنگ دور بدنش ساختند. داشت خفه می شد. دیوان وار دستش را به طرف کلید چراغ دراز کرد. با روشن شدن چراغ ابعاد اتاق بلافاصله فاصله به اندازه های طبیعیشان برگشتند. چند نفس امیخ کشید تا دوباره حالش جا بیاید. زیر لب گفت، واقعا که خنده داره. چراغ را که دوباره خاموش کرد دیوارهای اتاق مثل یک بند کشی که محکم کشیده شده و ناگهان رها شده باشد، باز هم به طرف ترلکوفسکی هجوم آوردند. اتاق همچون مقبرهی سنگی او را احاطه کرد. سنگینیاش روی سینه ترلکفسکی افتاده بود. دور سرش میچرخید و فشار خورد ای بر پشت گردنش وارد می آورد. در یک چشم به هم زدن باز هم به حال خفگی افتاد. اما خوشبختان انگشتهایش در آخرین لحظه که دیده را روی دیوار پیدا کردند. احساس خلاصیش آنی بود. تصمیم گرفت با چراغ روشن بخوابد، اما این هم آنقدر که فکر میکرد آسان نبود. حالا این ابعاد اتاق نبود که تغییر میکرد، بلکه این بار نوبت تناسبات میان اشیای اتاق بود که دگرگون شود. یا اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، نسبت فضاهای خالی ما بین اساسیه اتاق. مثل این بود که این فضا ابتدا از آب پر شده و بعد منجمد شده باشد. فضای خالی بین اشیای اتاق ناگهان به سختی و اصطواری کوه یخ شده بود و خودش هم یکی از همین اشیا بود. ترلکوفسکی باز هم محبوس شده بود. اما این بار نه درون دیوارهای اتاق بلکه در خلا و فضای تهی اتاق. سعی کرد با حرکت دادن دست پایش این توهم را از خودش دور کند اما فایده ای نداشت. بیشتر از یک ساعت در همین وضعیت باقی ماند. امکان خوابیدن هم نبود. تا اینکه ناگهان بدون هیچ دلیل مشخصی همه چیز به حال عادی برگشت. تلزم شکسته بود. برای آنکه مطمئن شود، یک چشمش را بست. بله. دوباره میتوانست حرکت کند. اما همین حرکت فصل جدیدی از وقای ازنجیروار را در پیدااشت ترلکوفسکی چشم چپش را بسته بود. بسیار خوب، اما با وجود این واقعیت که میدان دید او حالا باید به نصف کاهش می باز هم همه چیز را میدید. اساسیه اتاق به سمت راست اتاق تغییر مکان داده بودند. در حالی که هنوز نمی‌توانست آنچه را اتفاق افتاده باور کند این بار چشم راستش را بست. اساسیه بلا به سمت چپ اتاق تغییر مکان دادند اما آخر چطور ممکن بود روی کاغذ دیواری اتاق دو نقطه را به عنوان نقاط مرج انتخاب کرد و بعد چشمهایش را پشت سر هم باز و بسته کرد اما اگر سرش را حرکت نمیداد نقاطی را که به عنوان محله ارجا انتخاب کرده بود پیدا نمیکرد. و اگر اولی را پیدا میکرد دومی را نمی توانست پیدا کند. با لجاجت به این کار ادامه داد اما. حاصلی آیدش نشد. در اثر تلاشی که برای بازو کردن چشمهایش به خرش داده بود، دچار سردرد وحشتناکی شد. احساس می کرد را از داخل دستگاه پرز رد کردند. پلکایش را بست اما تصویر اتاق محو نشد. هنوز هم می توانست همه چیز را به خوبی ببیند. انگار پلکایش از جنس شیشه بودند. بلاخره شب، با تمام تصاویر کابوسگونش، به پایان رسید. خواب به فریادش آمد و تا غروب روز بعد او را ترک نگرد. سر و صدای کارگرانی که در حیات مشغول تعمیر سخف شیشهای بودند از خواب بیدارش کرد. خواست از تخت خواب بیرون بیاید اما خیلی ضعیف شده بود. فکر شاید گرسنه نباشد. ترس و دلهوره نهفته در احساس تنهایی و بی کسی، او را از پا انداخته بود. کسی نبود از او مراقبت کند. نازش را بکشد و یا دست خنکش را روی پیشانی سوزان او بگذارد. ترلکوفسکی تنها بود. مطلقاً تنها، همچون کسی که در آستانه مرگ قرار دارد. و اگر حالا می‌مرد، چند روز طول میکشید تا جسدش را پیدا کنند. یک هفته یا شاید یک ماه. اولین کسی که قدم به آرامگاه او میگذاشت کی بود؟ احتمالاً یکی از همسایه شاید هم صاحب خانه. فعلان هیچ کس توجهی به او نداشت اما بدون شک با رسیدن موعد پرداخت اجاره خانه عضاع عوض میشد. حتی با مرگ هم نمی توانست از شر آپارتمانی که به او تعلق نداشت خلاص شود. سعی کرد جلوی سیر این افکار یحساور را بگیرد من دارم بی جهد همه چیز بزرگ می کنم اون هم که به خودم تلقین می کنم تنها نیستم من زیادی به حال خودم افسوس می خورم در حالی که اگه خوب فکر کنم ترلکوفسکی گشت و گشت اما نتیجه ای نداشت او واقعا تنها بود تنها تر از همیشه تازه متوجه تغییری می شد که در زندگیش رخ داده بود چرا چه اتفاقی افتاده بود باید پاسخی وجود داشته باشد دوروبر ترکوفسکی را همیشه انواع و اقسام دوستان و آشنایان و اقوام پر کرده بودند و از آنجایی که همیشه میدانست روزی ممکن است به آنها نیاز داشته باشد چهارچشمی از آنها مراقبت کرده بود اما حالا خودش را تنها احساس می کرد. در جزیره متروکه درست در وسط بیابان عجب احمق نادانی بوده. حتی دیگر خودش را نمی شناخت. سر و صدای چکشکاری کارگرها در حیات او را از این موقع که دلسوزی به حال خود بیرون آورد. حالا که هیچکس به فکر ترلکوفسکی نبود پس باید خودش از خودش مراقبت می کرد و قبل از هر چیز باید خوب می خورد. بدون آنکه به آنچه چه می پوشد توجهی داشته باشد لباس پوشید. پایین رفتن از پله ها بی نهایت دشوار بود. ابتدا متوجه نشد. اما پله های چوبی آرام آرام به برآمدگی‌های های سنگی با سطوح زبر و خشن تبدیل شدند که به طور ناهمواری به هم متصل بودند. یکی دوبار که پایش به موانع پیشبینی نشده گیر کرد و لیز خورد. بدنش در اثر برخورد با نقاط تیز برآمدگیها زخمی شد. راه پله‌های تنگ و باریک بیشماری، از اصلی اصلی که روی آن ایستاده بود منشعب می شدند. راه پله هایی پیچ در پیچ و پوشیده از گلباته که مشکل میشد گفت از خارج به داخل می آیند یا از داخل به خارج. داخل این هزار تو ترلکوفسکی اغلب راهش را گم می کرد و نمی توانست راه خروج را بیابد. بعد از پایین رفتن از یک پلکان که ناگهان خودش را وارونه کرده بود به یک سقف رسید. هیچ دریا یا برای ادامه راه وجود نداشت. هیچ چیز جز سقفی سفید و هموار که ترلکوفسکی برای آنکه سرش به آن نخورد مجبور بود خم شود. چاره نداشت جز اینکه راه آمده را برگردد و دوباره از اول شروع کند. اما راه پله مثل یک کالنگ عمل می کرد طوری که وقتی به میانه های آن میرسید سمتی که ترلکوفسکی رو به آن داشت پایین میرفت و سمت دیگر بالا می‌آمد. در نتیجه ترلکوفسکی مجبور بود از پله ها پایین برود، آن هم در جایی که میخواست بالا برود، و جایی هم که میدانست باید از پله ها پایین برود، چاره‌ای نداشت جز آنکه رو روبه بالا برود. ترلکوفسکی بی خسته بود، معلوم نبود چند قرن است که در این راهروهای دوزخی سرگردان است. تنها به طور مبهم احساس میکرد وظیفه دارد به جستجویش ادامه دهد. در طول راه بارها با سرهایی مواجه شد که از دیوار بیرون زده بودند و کنجخاوانه او را نظاره می کردند صورتها کاملا مات و بی بودند اما ترلکوفسکی می توانست صدای خنده و ریشخندشان را بشنود سرها هیچ وقت مدتی طولانی یک جا نمی ماندند ناگه ها ناپدید می شدند اما کمی دورتر سرهای مشابه دیگری از دیوار بیرون می آمدند. و به ترلکوفسکی ظلم میزدند. ترلکوفسکی خیلی دوست داشت با تیغی بزرگ در امتداد راه روها و راه پله بدود و هر چیزی را که از دیوارها بیرون زده بود از تحقت کند اما متاسفانه چنین تیقی تیغی نداشت نفهمیده بود که در میان دویدنهایش به طبقه اول رسیده است بیوخفه در میان پیچهای تمام نشدنی پله یا پایین رفته بود یا بالا تا اینکه بالاخره متوجه سوراخ آفره مانندی شد که روی سقف شیشه ای نیمه تمام بود. نوری که از آن بیرون میزد، لرز لرزه بر اندام انداخت. دیگر به یاد نمیآورد که چرا از آپارتمانش بیرون آمده بود. گراسنگیش تقریبا برطرف شده بود و تنها چیزی که میخواست این بود که به تخت خوابش برگردد. بیماریش وخیمتر از آنی بود که فکر می کرد. بدون اینکه سختی زیادی را تحمل کند، خودش را به آپارتمانش رساند. اما دیگر نیرویی برایش باقی نمانده بود تا لباسهایش را درآورد. را روی خودش کشید بدون آنکه حتی کفشهایش را از پا درآورده باشد. اما حتی حالا هم دندانهایش از سرما به هم میخوردند از خواب که بیدار شد، هوا تاریک شده بود. حالش بهتر نشده بود. اما کرختی ناشی از تب جایش را به هوشیاری فوق ای داده بود به راحتی از جایش بلند شد از آنجایی که هنوز نسبت به فس عمل اندامش تردید داشت سعی کرد چند قدم راه برود در کمال تعجب متوجه شد که دیگر سرگیجه ندارد بیشتر احساس میکرد که پاهایش با زمین تماس ندارند کمترین حسنش این بود که توانست لباس هایش را درآورد وقتی به طرف پنجره رفت تا شلوارش را از تکیه گاه سندلی آویزان کند، بر حسب عادت نگاهش به پنجره بیزی شکل آن سوی حیات افتاد. در آن اتاق زنی را دید که به سرعت او را شناخت. سیمون شول سیمون شول در همان وضعیتی نشسته بود که ترلکوفسکی پیش از این بارها دیگران را دیده بود. اما بعد انگار حد زده باشد که ترلکوفسکی سرگرم تماشای اوست آهسته به سوی ترلکوفسکی چرخید. یک دستش را بالا آورد و شروع کرد به باز کردن نوار زخبندی که صورتش را پوشانده بود. آنقدر که نیمه پایینی صورتش تا نکه بینی آشکار شد. لبخند کریح و بد روی لبانش نقش بست. ترلکوفسکی دستهایش را روی پیشانیش گذاشت و فشار داد. میخواست به هر قیمتی که شده خودش را از شر این منظره خلاص کند اما برای این کار نیروی کافی نداشت سیمون باز هم در حال حرکت بود هیچ کدام از حرکاتش از دید ترکوفسکی پنهان نبود سیمون دستش را بلند کرد و زنجیر سیفون را کشید بعد لباسش را مرتب کرد و آخر سر هم از توالت خارج شد با بسته شدن در چراغ توالت هم خاموش شد تنها اینجا بود که ترلکوفسکی موفق شد رویش را از پنجره برگرداند درآوردن لباسهایش را از سر گرفت اما وقتی خواست دکمه های پیراهنش را باز کند هایش شروع به لرزیدن کردند برای اینکه پیراهنش را درآورد چارهای نداشت جز اینکه آن را از هم بدرد پیراهن با صدای هزنانگیزی پاره شد ترلکوفسکی ابدا متوجه نشد ذهنش در بست در بند چیزی بود که چند لحظه پیش دیده بود این دیدن شبه سیما شول نبود که تا این حد موجب نگرانی و وحشت او شده بود چون به طور منطقی تب شدیدش را مسئول این تبه میدانست. اما در مدتی که سرگرم تماشای سیما شول بود احساس به مراتب عجیب و غریبتر و باور نکردنی تری به او دست داده بود برای چند ثانیه احساس کرده بود که به اتاقک که در آن سوی حیات رفته و از آنجا سرگرم تماشای پنجری آپارتمان خودش است. از آنجا مردی را دیده بود که صورتش به شیشه پنجره چسبیده بود و از نظر شباهت کاملا همزاد او محسوب می شدد. که در آن صورت بودند چنان به او خیره شده بودند که گویی ناظر صحنه بودند که به طور بیان ناپذیری ترسناک بود.